جلد نهم شرح نعجل بلاغی ابن عبل معتزلی صفحه و شش هفت هشت ادامه داره ولی من قسمتیشو عبدالرحمن ابن جندب نقل میکنه از پدرش جندب ابن عبدالله ازودی که کنتو جالسن بالمدینه حیث و بویع عثمان. من مدینه یه گوشه نشسته بودم وقتی که مردم با عثمان، بیعت کرده بودند فجعت و جلستو ال مقداد رفتم بغل مقداد نشستم فسمعته یقول دیدم مقداد داره حرف میزنه مردم داشتن با عثمان بیعت میکردن مقداد نشسته بود داشت حرف میزد چه میگفت میگفت والله ما رأیت مسما یا ال اهل هازل بیت اشاره میکرد خانه علی را و زهرا را میگفت به قسم من ندیدم اون جوری که با این خانواده عمل کردن با کسی دیگه عمل کرده باشه دیدم مقداد مثل یکی نشسته با خودش دیدید کسی که یه جوونش از دست میره عزیزی رو از دست داده میخواد مرسی سرایی کنه با خودش میگه حرف میزنه گریه میکنه این آوج ناراحتی و شدت یک شخص رو میرسونه میگه دیدم مقداد داره همجوری حرف میزنه با خودش گوش کردم سمعتو داره میگه به خدا من ندیدم وکان عبد الرحمن ابن عوف جالسا یکی از اون مهره های کامل بیماری من دینی جامعه و ما, و ما انت و مقداد تو رو چی مقداد چی داره میگی یعنی سخه ده ببندید بنا نیست کسی درد جامعه رو به جامعه بگه ها شما شروع کردید از این حرفا زدن قال المقداد مقداد شروع کرد جواب دادن انی والله أحب حمل به رسول الله من اینا رو دوست دارم به خاطر اینکه پیغمبر رو دوست دارم چون اینا رو دوست دارم حرفم رو میزنم هر کار میخواید بکنید بکنید و انی من قریش من تعجب میکنم از این مردم قریش افتخار میکنن که پیغمبر به ما عزت داده سمه. انتظاه هم سلطان هون اهل، اما دارن خانوادش رو از این قدرتی که بناس داشته باشن کنار میزنن عبدالرحمن اوف برگشت گفت ببینید جا به جا شدن ارزشها. ها عبدالرحمن اوف گفت که اما والله لو انالی... بله. مقداد میگه به عبدالرحمن اوف گفتم به خدا قسم اگر من امکان میداشتم و یاور میداشتم ان لی علی قریش اعوانا لقاتلتهم فقتالی ایاهم به بدر و احد مقداد به عبدالرحمان گفت به خدا قسم اگه امرو کمک میداشتیم همان جوری که در جنگ بدر و جنگ عهود با این خانواده‌ها جنگیدیم حالا با اینها میجنگیدم بقاله عبدالرحمن سکلات که عمک لا یسمه ان عادل کلام ناز مادرت به ازاد بیشین مردمی ارفا رو نکنه بشن بن فر به این عبارت دقت کنید فر ان انتکونا صاحب فتن و فرغه فتنه و فرقه من میترسم شماها عمل فتنه و تفرقه بشید ببینید پزشک داره به بیمار میگه سر درد میکنه آقا کسالت داری برو داروتو تهیه کن یه عده میگن چرا آسایشو به هم میزنی چرا ذوقشو داری کور میکنی چرا نمیذاری راحت زندگی کنه آقا من دارم درد رو بیان میکنم هنوزم بعد از چارده قرن اگر یک عد درد شناس در گوشه و کنار عالم درد کره اسلام رو بخوان بیان کنن بگن چرا تون میرید تون رفتن درد بیان یعنی حرفی بود که عبدالرحمن اوف داره به جناب مقداد میگه اما مقدادم چه جواب قشنگی داد قال المقداد دعا دَعَا الحق و اهلهی و ولات الامر لا و صاحب و فتنه کسی که مردم رو به حق دعوت میکنه او که فتنه انگیز نیست فتنه انگیز کسی که مردم رو از حق باز میداره عبدالرحمن اوف میگه دیدم نمیتونم اینجا باش حرف بزنم زود این جمع رو ترک کردم جندت ابن عبدالله میگه من دنبال مقدادم پاشد را افتاد منم دنبالش را افتادم دیگه نمیرسم بخونم دنبالش را افتادم دیدم صاف رفت تو خانه علی ابن ابی طالب منم رفتم بغلس علی نشستم این این قضیه رو فلم ما جلستو قلت قلتو یا ابل حسن والله ما اصاب قومو که به امر انگ میگه منم رفتم پیش از تعمیر نشستم گفتم آقا یه همچو قضیه‌ای الان اینجا گفت و شنود شد و این مطالب مطرح شد حضرت فرمودن صبر و والله المستعان فعلا چاره‌ای جز صبر نداریم فقلت و گفتم والله این نکل الصبور آقا جان به خدا قسم شما خیلی صبورید غاله دقت بفرمایید علی فرمودن لم اصبر فمازا اسنع صبر نکنم چه کنم صبر نکنم چه کنم بعد این از خطبه شیخ شقی وقت بشه یه تیکه‌شو خدمتتون میگم انی جلس تو الالم بعد بیان کردم که من اینجوری گفته مقداد اینجوری گفت حضرت فرمودن این تیکه رو دقت بفرمایید میگه تقوم و فمن به حضرت گفتم که آقا جون نمیشه شما تقوم و فناس و تدعوهم الی نفسیک پاشید بیاید تو مردم و مردم رو بگید بیاین دیگه آقا کمکم کنین من تنها موندم جامعه بیمار شد میخواییم جامعه رو مداوا کنیم و تخبر انک اینکه اولا به نبی خبر بدید به مردم که شما سزاواری و این حق شماست و تسأل همون نصر علاها اولائل مظاهرین علیه و از مردم درخواست کنید که به شما کمک کنند بر علیه این مردم اقدامی بکنید فا این عجابه که من منمعه ولو از ستا از صد ده در صد، از صد تا ده تاشون به شما ایمان بیارن شدت تا به حمال بالاخره بلاخره جمعیت جمعیتی میشن با اینا میتونید یه کاری بکنید و الا قاتل تهم و و کنته اولا بالعوض قتل تا بقید و کنته اعلا اندالله حجه اتمام حجت بشه اما جواب از تعمیر رو فقال خب مقداد دین شناس بود عبدالله ابن جندب دینشناس بود ابوزر دینشناس بود مشکل جامعه رو اینجوری بیان کردن. اما جندب میگه من وقتی بعض تعمیر گفتم که جناب مقداد اینجوری گفت حالا من نظرم این بود که اگه شما بیاید تو مردم به مردم بگید آقا پاشید با من همراهی کنید از صدتا تا دیگه دهتا که میان فقال علی علیه السلام از هر جویا جندب آی جندب تو امید داری این یبایعنی من کل عشر واحد از هر دهتا یکی تا یکی دهدر ستا دهتا دهتا یکی قول تو ارجو گفتم بله آقا من این مقدار امید دارم قال علی یون علیه السلام لا کنی لا ارجو ظالکه لا والله من المعت واحد اگه من علی رو میگه این مردم به گونه از هزارتا شنی یه دونه سالم هم در نمیاد این ابن عبدالحدید معتزلی میگه سنی شیعه نیست کتاب 800 سال قبل نوشته شده از هزارتا یه دونه تو اینا پیدا نمیشه آقا این بیماری یک جامعه است ادامه شو یه تیکه بخونم فرصت زیغه آتش میزنه خدای من شاهده اولین باری که در سیر مطالعاتیم به این سفه رسیدم اونقدر منقلب شدم اونقدر ترسیدم بلا فاصله زنگ زدم به استادم، گفتم وحشت منو گرفته شما در این زمینه چی منو راهنمایی میکنید حالا ادامه شده دقت بفرمایید وقتی که از تعمیر فرمودن جندب. از هر هزار تاشم یکی من پیدا نمی که تو این مردم گفتم خواب آقا پس حالا که اینجوره من چه بکنم ببینید احسن بر اونایی که میگه پس چه بکنم یعنی حالا آماده نیستن منم یکی از اونا بیام خدمتون این بیماری رو از بین ببریم، یه جراحی انجام بدیم، این قدر رو از این جامعه اسلامی بکنیم، جامعه رو نیست، خب من چه بکنم؟ حالا برم بخ... بخورم، و بخوابم؟ حضرت فرمود برو با مردم حرف بزن. برو حرف بزن. وقت نیست که این عبارات رو بخونم که چه عبارات عجیبی است. با مردم حرف بزن. میگه من پا شدم اومدم رفتم کوفه. انصرفت و الالعراق و کنت اذکر فضل علی لن الناس رفتم کوفه فضائل علی رو برای مردم میگفتم خود مولا فرمود مردم متوجه بشن بفهمن بیدار بشن فلا ادمر رجلا یقول لی ما اکر و احسن و ما ما اسمعه قول من یقول این عبارت بعدی وحشتناک فرمود من میرفتم ولی کی گوش میکرد؟ مردم در بند شکم و شهوتشون بودن کی حوصله گوشتدنه رو داشت میخواستن نون بخورن میخواستن به دنیاشون برسن میخواستن به تعلقات زندگیشون برسن اما بالاخره برای که عذاب وجدان نداشته باشن یه چار کلمه اظهار بحث دینی هم بکنن حالا عبارت دقت بفرمایید نمیدیدم مگر اینکه من در مسجد نشسته بودم جوری که ابیذر تو مدینه می کرد منم کوفه در مسجد به مردم بگم از کنار من رد میشدن این عبارت رو دقت کنید دع انک هازا و خذ فیما ما ينفعوک این حرفا رو ول کن یه چیزایی بگو که منفعت داشته باشه ای داده میداد دقت بکنید یعنی چی چارده قرن ما گرفتاری مسئله ایم چارده قرنه میگه من میومدم به مردم داد میزدم بابا اگر بناس لفتحنا علیهم برکات من از و لرز باید شما خدا را راه خدا را قبول کنید میگفتن دع ده انکه هازا و خذ فی ماین فاک اینا را بذار یه چیزایی رو بگیر که نفت داره فقول. من میگفتم ان هاذا مما ينفعني وينفعك نه من منفعت تو همیناست که من دارم میگم